اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الیف لامیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر الف لام ميم روم. رومیان روميان مغلوب شدند في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون و این شکست در سرزمین نزدیکی رخ داد اما آنان پس از این مغلوبیت به زودی غلبه خواهند کرد بضع لله من قبل و من و در قبل ومن بعد چند سال همه کارها ازان خدا است چه قبل و چه بعد از این شکست و پیروزی و در آن روز مؤمنان به خاطر پیروزی دیگری خوشحال خواهند شد بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ به سبب یاری خداوند و او هر کس را بخواهد یاری میدهد و او صاحب قدرت و رحیم است وَعَدَ الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون این وعدی است که خدا کرده و خداوند هرگز از وعده اش تخلف نمیکند ولی بیشتر مردم نمیدانند يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون آنها فقط ظاهری از زندگی دنیا را می‌داندند و از آخرت غافلند اولا تفکرو فی انفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما الا بالحق إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بلقاء ربهم لَكَافِرُونَ آیا آنان با خود نگندیشیدند که خداوند آسمان آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان آن دو است جز به حق و برای زمان معینی نیافریده است ولی بسیاری از مردم رستاخیز و لقای پروردگارشان را منکرند اولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبت الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوته وآثار الأرض وعمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله لیظلمهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون آیا در زمین گردش نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه بود آنها نیرومندتر از اینان بودند و زمین را برای زراعت و آبادی بیش از اینان دگرگون ساختند و آباد کردند و پیام برانشان با دلایل روشن به سراغشان آمدند اما آنها انکار کردند و کیفر خود را دیدند خداوند هرگز به آنان ستم نکرد آنها به خودشان ستم می ثم كان كذبوا بآيات الله و يستهزئون سپس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جایی رسید که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به مسخره گرفتند الله یبدأ الخلق ثم يعيده ثم ترجعون خداوند آفرینش را آغاز می کند سپس آن را باز میگرداند. سپس شما را به سوی او باز می‌گردانند ویوم تقوم و يبرص المجرمون آن روز که قیامت برپا می شود مجرمان در نومیدی و غم و اندوخ فرو میروند. ولم لهم من شفعاء و, كانوا و, كانوا و برای آنان شفیانی از معبودانشان نخواهد بود و نسبت به معبودهایی که آنها را همتای خدا قرار داده بودند، کافر می شوند. و یوم تقوم ساعت و یوم یتفرقون آن روز که قیامت برپا می گردد، مردم از هم جدا می شوند. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ, فهم فِي رَوْضَتٍ يُحْبَرُونَ اما آنان که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند در باقی از بهشت شاد و مسرور خواهند بود. وامّال الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقا إلى آخرة فأولئك فأولئك في العذاب محضرون و اما آنان که به آیات ما و لقای آخرت کافر شدند در عذاب الهی احزار می شوند فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون منظه است خداوند به هنگامی که شام میکنید و صبح میکنید. کنید وله الحمد في السماوات والأرض و عشی تظهرون و هم دو ستایش مخصوص اوست در آسمان و زمین و به هنگام عصر و هنگامی که ظهر میکن ی خرجحي من المیتی وخرج المط من الح ووحيل الأارض بعد موتها وکذ تخرجون. خرجون زنده را از مرده بیرون میآرد و مرده را از زنده. و زمین را پس از مردنش حیات می بخشد و به همین گونه روز قیامت از گورها بیرون آورده می شدید و من آیاتهی انخلقكم من تراب ثم اذا انتم ثم انتم بشرون تنتشرون از نشانه های او این است که شما را از خاک آفرید سپس به ناگاه انسانهایی شدید و در روی زمین گسترش یافتید و من آیاتهی انخلق لكم من انفسکم ازواجا لتسکنو لتسکنو إليها وجعل بینکم مودتا و رحمة این نفی ذالک لآیات لقومی و از نشانه های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مبدت و رحمت قرار داد در این نشانه است برای گروهی که تفکر می کنند و من آیاتهی خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم این نفی لآیات للعالمین و از آیات او آفرینش آسمانها و زمین و تفاوت زبانها و رنگهای شماست در این نشانه است برای عالمان. و من آياتی من نهموک بنی و نهنی و بدیغک مییم خوابگونی این نفیدنی و از نشانه های او خواب شما در شب و روز است و تلاش و کوششتان برای بهرهگیری از فضل پروردگار در این امور نشانه هاییست برای آنان که گوش شنوا دارند و من آیاته یریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء و ینزل من السماء ماء فیحیی به الأرض بعد موتها این و از آیات او این است که برق و رعد را به شما نشان می دهد که هم مایه ترس و هم امید است ترس از سائقه و امید به نزول باران و از آسمان آبی فرو می فرستد که زمین را بعد از مردنش به وسیله آن زنده میکند در این نشانه‌ای است برای جمعیتی که می اندیشند و من آياته ان تقوم السماء والارض بأمره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون و از آیات او این است که آسمان و زمین به فرمان او برپاست سپس هنگامی که شما را در قیامت از زمین فراخواند، ناگهان همه خارج می شوید و له من فی السماوات والارض کل و از آن اوست تمام کسانی که در آسمان ها و زمین اند و همگی در برابر او خاضع و مطیعند و هو الذی الخلق ثم یعیده و هو اهون عليه، و له المثل الاعلى فی السماوات والأرض، الارض و هو العزیز الحکیم او کفی است که آفرینش را آغاز می‌کند سپس آن را باز می‌گرداند و این کار برای او آسانتر میباشد و برای اوست توصیف برتر در آسمان ها و زمین و اوست توانمند و حکیم ضرب لكم مثلا من انفسکم هل لكم مما ملكت ایمالکم من شرکاء فيما رزقناکم لقوم يعقلون. خداوند مثالی از خودتان برای شما زده است. آیا اگر مملوک و برده ای داشته باشید؟ این برده های شما هرگز در روزی هایی که به شما داده‌ایم شریک شما می‌باشند آنچنان که هر دو مساوی بوده و از تصرف مستقل و بدون اجازه آنان بیم داشته باشید آنگونه که در مورد شرکای آزاد خود بیم دارید اینچنین آیات خود را برای کسانی که تعقل می‌کنند شرح می‌دهیم بل اتبع الذین ظلموا اهواء بغیر علم فمن یهدی من اضل الله وما لهم من ناصرین بری ظالمان بدون علم و آگاهی از هوا و حوث خود پیروی کردند پس چه کسی می آنان را که خدا گمراه کرده است هدایت کند و برای آنها هیچ یاوری نخواهد بود فاقیم وجهک للدین حنیفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القیم ولكن أكثر الناس لا يعلمون پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن این فطرت است که خداوند انسان را بر آن آفریده دگرگونی در آفرینش الهی نیست این است آیین استوار ولی اکثر مردم نمی دانند منیبین الیه واتقوه واقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین این باید در حالی باشد که شما به سوی او بازگشت می کنید و از مخالفت فرمان او بپرهیزید نماز را برپا دارید و از مشرکان نباشید من الذین فرقوا دینهم كل بما فرحون. از کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و به دسته ها و گروهها تقسیم شدند و عجب این که هر گروهی به آنچه نزد آنهاست خوشحالند و اذا مسن ناس درون دعو ربهم منیبین الیه ثم اذا اذاقهم ثُمَّ اِذَا عَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَتًا اِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّی مِشْرِقُونَ هنگامی که رنج و زیانی به مردم برسد پروردگار خود را میخانند و توبه کنان به سوی او باز میگردند اما همین که رحمتی از خودش به آنان بچشاند به ناگاه گروهی از آنان نسبت به پروردگارشان مشرک فسوف تعلمون بگذار تا نعمتهایی را که ما به آنها داده این کفران کنند و از نعمتهای زود گذر دنیا هرچه می توانید بهره گیرید اما به زودی خواهید دانست که نتیجه کفران و کامجوئی های بی حساب شما چه بوده است؟ ام عليهم فهو يتكلم بما كانوا به آیا ما دلیل محکمی بر آنان فرستادیم که از شرکشان سخن میگوید و آن را موجه میشمارد؟ وإذا أدقنا الناس رحمتا فرحوا بها و این تصبهم سیئتم بما قدمت ایدیهم اذا هم یقنطون و هنگامی که رحمتی به مردم به چشانیم از آن خوشحال میشوند و هرگاه رنج و مصیبتی به خاطر اعمالی که انجام دادهاند به آنان رسد ناگهان معیوس میشوند اولا يرو ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون آیا ندیدند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ میسازد در این نشانه است برای گروهی که ایمان میآورند آورند فاتی ذل قربا حقه والمسکین وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون پس حق نزدیکان و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن این برای آنها که رضای خدا را می بهتر است و چنین کسانی رستگارانند و ما اتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو فلا یربو عند الله و ما من زکاة توریدون وجه الله فأولائک هم المضعفون آنچه به عنوان ربا می پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آنچه را به عنوان زکاة می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید مایه برکت است و کسانی که چنین می کنند دارای پاداش مضاعفند الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون خداوند همان کسی است که شما را آفرید سپس روزی داد بعد می‌میراند سپس زنده می‌کند آیا هیچ یک از همتایانی که برای خدا قرار داده اید چیزی از این کارها را می توانند انجام دهند او منزه و برتر است از آنچه چه همتای او قرار میدهند دهند ظاهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم لیذیقهم بعضا الذی عملوا لعلهم یرجعون فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده اند آشکار شده است. خدا میخواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند شاید به سوی حق باز کردند. قل سیر فی الأرض فنظر كيف كان عاقبت الذین من قبل كان اكثرهم مشركين بگو در زمین سیر کنید و بنگرید عاقبت کسانی که قبل از شما بودند چگونه بود بیشتر آنها مشرک بودند فاقم واجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يوم اذين يصدعون روی خود را بسوی سوی آین مستقیم و پایدار بدار پیش از آن که روزی فرار رسد که هیچ کس نمی تواند آن را از خدا بازگرداند در آن روز مردم به گروه تقسیم میشوند من کفرف علیه و من عامل صالحا یمهدون هر کس کافر شود کفرش بر زیان خود اوست و آنها که کار شایسته انجام دهند به سود خودشان آماده میسازند. لیاجزی الذین آمنوا الصالحات من فضله لا يحب این برای آن است که خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادهاند. از فضلش پاداش دهد او کافران را دوست نمی دارد و من آیاتی که ان ارسال الرياح مبشرات وليذيقكم وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بمره ولتبتغ ولتبتغ من فضله ولعلكم تشكرون و از آیات خدا این است که بادها را به عنوان بشارتگراری میفرستد تا شما را از رحمتش بکشاند و کشتیها به فرمانش حرکت کنند و از فضل او بهره گیرید شاید شکر گذاری کنید. و لقد ارسلنا من قبلك رسولا الى قومهم فجاؤهم بالبینات فانتقمنا, فانتقمنا من الذین اجرمو و کان حقا علینا نصر المؤمنین و پیش از تو پیامبرانی را به سوی قومشان فرستادیم آنها با دلایل روشن به سراغ قوم خود رفتند ولی همگامی که اندرزها سودی نداد، از مجرمان انتقام گرفتیم و مؤمنان را یاری کردیم و یاری مؤمنان همواره حقی است بر عهده ما. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسكو في السماء فَيَبْسُقُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجَعَلُهُ كِسَفًا وَيَجَعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَ الْوَدِقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ, إذا هم يَسْتَبِشِرُونَ خُدَابَنْد همان کسی است که بادها را میفرستد تا عبرهایی را به حرکت درآورند. سپس آنها را در پهنه آسمان آنگونه که بخواهد می و متراکم میسازد. در این هنگام دانه های باران را میبینی که از لابلای آن خارج می شود هنگامی که این را به هر کس از بندگانش که بخواهد برساند ناگهان خوشحال و این کانو من قبل این ينزل عليهم من قبله لمبلسین و قطعا پیش از آن که بر آنان نازل شود مأیوس بودند فانظر الى آثار رحمت الله فانظر الى آثار رحمت الله كيف يحیی الارض بعد موتها این ذلك لمحیی الموتا وهو على كل شيء قدیر به آثار رحمت الهی بنگرد که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده می کند چون این کسی که زمین مرده را زنده کرد ز مردگان در قیامت است و او بر همه چیز توانست ولا این عروسری حفر او و مصفر والوللو للویم بعدی یک و اگر ما بادی بفرستیم داغ و سوزان و بر اثر آن زراعت و باغ خود را زرد و پژمرده ببینند معیوس شده و پس از آن راه کفران پیش میگیرند. اینک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم دعاء اذا ولهم مدبرین تو نمی توانی صدای خود را به گوش مردگان برسانی و نه را به گوش کران هنگامی که روی برگردانند و دور شوند و ما انت به هادی العمی عن ضلالتهم این تسمعو الا من یؤمنو بی فهم مسلمون و نیز نمی توانی نا نا را از گمراهیشان هدایت کنی تو تنها سخنت را به گوش کسانی می‌رسانی که ایمان به آیات ما می‌آورند و در برابر حق تسلیمند الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه یخلق ما يشاء وهو العليم القدیر خدا همان کسی است که شما را آفرید در حالی که ضعیف بودید سپس بعد از ناتوانی قوت بخشید و باز بعد از قوت ضعف و پیری قرار داد او هر چه بخواهد می و دانا و توانا است و یومه تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه كذلك كانوا یفكون و روزی که قیامت برپا شود مجرمان سوگند یاد میکنند که جز ساعتی در عالم برزخ درنگ نکردند اینچنین از درک حقیقت بازگردان نمی‌شوند. و قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ولی کسانی که علم و ایمان به آنان داده شده میگویند شما به فرمان خدا تا روز قیامت در عالم برزخت رنگ کردید و اکنون روز رستاخیز است اما شما نمی دانستید الذین ظلموا ولا هم آن روز عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان ندارد و توبه آنان پذیرفته نمی شود ولا قد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بايه لقولن الذين كفروا ان انتم إلا مبطلون ما برای مردم در این قرآن از هر گونه مثال و مطلبی بیان کردیم و اگر آیه ای برای آنان بیاوری کافران میگویند شما اهل باطلی و اینها سحر و جادوست است كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. این گونه خداوند بر دلهای آنان که آگاهی ندارند مهر می نهاد تصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك چنین لا يوقنون اکنون که چنین است صبر پیشه کن که وعده خدا حق است و هرگز کسانی که ایمان ندارند تو را خشم گیر